عبدالله شوهر زینب بیمار بود دستشم آسیب دیده بود نمیتونست بیاد کربلا تو مدینه منده بود اما متدینه خیلی علاقمند به عبدالله بود دوتا پسراش هم داد حضرت زینب آورد در کربلا شهید شد دوتا پسراش وقتی که کاروان عبدالله بیرون مدینه چادر زدن امام سجاد فرمود بشیر برو خبر بده خبر دادن اینا دویدن اومدن امام سجاد علیه السلام به محمد که بود دست در دست گردن هم شروع کردن گریه کردن محمد حنفیه بیهوش شد اختاب قطرات عشق چشم امام سجاد چکید رو صورت محمد حنفیه تا چشم باز کرد گفت یبن اخی این اخی یبن اخی پسر برادرم این اخی برادرم کن عبدالله هم میگشت همینطور تا اومد خدمت امام سجاد با آقا امه شما زینب هم در کربلا شهید شد قصد نه اینکه اینجا فلويه مله عمه من زینب کبری این که نقل شده گو عبدالله هم داری منو نشناسه چون من وقتی از مدینه رفتم شرایط دیگه ای داشتم یعنی جسم زینب کبری انقدر خرد شده که شوهرش همسرشو سرشو نشنا انقدر فشار جسمی اما روحیه زینب چیه وقتی کار برای خداس عظمت هم خدا چه میکنه زینب کبری وقتی در مدینه مرتب بیان میکرد مظلومیت عبی عبدالله رو جنایات یزید و خاندان معاویه رو استاندار مدینه نوشت برای یزید که یزید زینب اگر در مدینه بماند انقلابی برپا خواهد شد چه بکنیم؟ گفت زینب رو به عنوان طبعیدی بفرستید شام عبدالله رو خواستن عبدالله دستور از مرکز اومده زینب و کبرا رو باید تبعید کنیم به شام عبدالله گفت من همراهش میاد زینب و کبرا و عبدالله یه تعدادی هم به عنوان همراه اومدن جایی که الان حرم مفهر حضرت زینب کبراست یه مقداری با شهر شام فاصله داره بیرون شهره وقتی به اینجا رسیدن الانم اونجا شما تابلو داره راه میگن اون وادی رو میگن مزرعه عبدالله ابن جعفر عبدالله بن جعفر چون عبدالله پسر جعفر تیار شوهر از زینب بوده امکانات مالیش هم خوب بوده وقتی به بیرون شام رسیدن زینب کبرا سلام الله علیه ها و عبدالله فرمید عبدالله دیگه تحمل شام رو ندارم. اگر میشه این مزرعه رو خریداری بکنید میخوان ما رو تحت کنترل داشته باشن ما همینجا تو این مزرعه میمونیم دیگه من تو شام نرم عبدالله ها مزرعه رو خریداری کرد اینا اونجا تحت محاصره و حالت تبعیدی داشتن عبدالله نرمی کنه فقط گاهی نیمه های شب جمعه زینب کبرا از من میخواست مخفیانه بریم داخل شهر کنار قبری که منصوب به رقیه است کنار قبر رقیه و سایر سرهای شهدا زیارتی میکرد یک شب جمعه میگه نیمه های شب از کنار قبر رقیه برگشتیم دیدم زینب کبرا صحبتش با من عوض شد او عبدالله مادر من رو شبانه پدرم به خاک سپر دلم میخواد که من رو هم تو شبانه به خاک بسپرید گفتم عبدالله چطور عبدالله میگه گفتم زینب چطور از مرگ سخن میگی گفت امشب شب آخر و عمر من است جان به جان آفرین تصمیم خواهم کرد اما بگذار خاندان ما مظلومانه به خاک سپرده شوند مرا در دل شب به خاک بسور و خودت به مدینه برگرد عبدالله میگه چیزی نگذشتیدم زینب بعد از دعاهایی که کرد رو به قبل خاوید و چون مادرش پارچه روی خودش کشید هر چه صدا زدم زینب جواب نداد فهمیدم که از دنیا را اون شب آمد عبدالله مثل پدر زینب کبرا علی مرتزا که زهرار رو گست داد زینب رو داد و شبانه در اون جا به خواب سپرده به مدینه برگشت اما الان شما در شام میبینی گمبد تلاعی زینب کبرا و آثار فضیلتی رقیه در شام چگونه ساته است آثار معاویه و یزید در شام چگونه آثاری باقی منده آری اگر کار برای خدا شد ولله الازده ولی رسولهی ولی المؤمنین صل الله علیکه یا عبا عبدالله